بسم الله الرحمن الرحیم برامی خداوند بی اندازمه نهایت بارشت الف می خداوند جزء معبود نیست زنده و خط قائده است کتاب را بر به تو نازل گردانی کتابی را که تایید کننده کتب است که پیش از آن آمده است و از آن پیش تورات و انجیل را برای هدایت مردم نازل گردانید و نیز فرقان یعنی فرق گزارنده بین حق و باطل را نازل که کسانی که از آیات خدا انکار ورزیدن بیگوان برایشان عذاب شدید است و خداوند صاحب قدرت منعین و انتقام گیرنده است واکن بر خداوند هیچ چیزی در زمین و در آسمان پوشیده نیست او ذات است که شما را در رحم مادران هر طوری که بخواهد تصویر می کند جز او هیچ معبودی نیست صاحب قدرت منی و با حکمت است او ذات است که بر تو کتاب را نازل گردانیده است که قسمتی از این آیات محکم یعنی واضح و روشن است اینها اساس کتابند و قسمت دیگر متشابه است یعنی ظاهرا واضح و روشن نیست پس کسانی که در دلهایشان انحرافیست، برای فتنه انگیزی و به قصد تعویل قسمتی از آن را که متشابه هست بدونی در نظر داشت آیات محکمی که در زمینه آمده است پیروی می کنند. در حالی که جز خدا و کسی دیگر تعویل آن را نمی داند آنانی که در علم ثابت قدم هستند می ما با این کتاب ایمان آوردیم همه آن از جانب پروردگار ماست و جز دانشمندان هیچ کس پن پند یعنی مفهوم این پیام را درک کردن نمی تواند پرانها می پروردگار ما پس از آن که ما را هدایت نمودی دلهای ما را منحرف مگردان و به ما از نزد خود رحمت عنایت فرما حقا که تو تنها توی بسیار بخشاینده ای پروردگار ما بگمون تو جمع کننده مردمی در روزی که در آن شکی نیست فقاو که خداوند و خود را خلاف نمی کند کسانی که کافر شدند نی داراییشان و نی اولادشان هرگز ایشان را از خداوند بینیاز نمی سازد و همین هایند آتشگیغی دوزخ عادتشان مانند عادت فرامیان و کسانی می باشد که پیش از آنها بودند ایشان آیات ما را تکذیب کردند پس خداوان آنها را به گناهانشان گرفت و خداوان سخت مجازات دهنده است و کافران بگو به زودی مغلوب می شوید و به سوی دوزخ حشر می و چی بد مسکنی است دوزخ حقا که برای شما در دو دستهی که با هم در کارزار رو شدند نشانه ای بود یک دسته در راه خدا جنگ می کرد و دسته دیگر کافر بود آنها یعنی کافران ایشان را یعنی مسلمانان را به چشم خود دو برابر تعدادشان می‌دیدند و خداوند هرکی را بخواهد به یاری خود تعیید می کند حقا که در این رویداد برای مردم صاحب پیدنش پندیست برای مردم محبت چیزهای مرغوب از قبیل زنان و فرزندان زخایر تودشه از طلا و نقره و های نشانی شده یعنی اصیل. مواشی و زمین های صالح و زراعت زیبا و جلوه داده شده است این است متای زندگی دنیا در حالی که سرانجام نیک در نزد خداوند است بگو آیا شما را به چیزی که از این هم به شما بهتر است مجدگانیده هم برای پرهیزگاران در نظر پروردگارشان است که از زیر درختان آن جویبارهای چریان دارد در آن جاودانه و سر میبرند و همسران پاکی زیز و خوشنودی خداوند و خداوند و بندگان خود بیناست آنانی که میگویند پروردگار ما واقعا ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نجات بدیم <تصفيق> یعنی شکیبایان، راستگویان، فرمان برداران خرچ کنندگان و آمرزش خواهان در سهرگاهان خداوند گواهی داد بر اینکه جز او معبودی نیست و فرشتگان و کسانی که از علم اندوز هستند نیز در حالی که خداوند به عدالت قایم است جز او معبودی نیست او صاحب قدرت منیم و با حکمت است حقا که دین در نزد خداوند اسلام است و کسانی که به ایشان کتاب داده شده بود در آن اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به ایشان ایذ مخاطب شد آن هم به خاطر حسدی که در میان خود داشتند و کسی که از آیات خداوند انکار ورزد اسمی بیگمان خداوند در حساب گرفتن سریست هرگاه ایشان با تو مجادله کنند بگو من خود را به خدا تسلیم کرده ام و هر کی پیرو من است نیست و به اهل کتاب و اومیها یعنی آنانی که فاقد دانشند، بگو آیا شما هم خود را تسلیم کردید پس اگر خود را تسلیم کنند و هدایت شده اند و اگر رو گردانیدند پس وظیفه تو رسانیدن پیغام است و خداوند بر بندگان بیناست. است کسانی که از نشانه‌های خداوند انکار می کنند پیامبران را به ناحق می کشند و کسانی را نیز می کشند که مردم را به عدالت امر می کنند ایشان را به عذاب دردناک دید ایشان کسانی اند که اعمالشان در دنیا و آخرت ضایع گردیده است و برای ایشان مددگاری نیست آیا تو به سوی کسانی ندیدی که به ایشان حصهای از کتاب داده شده است در حالی که به سوی کتاب خدا دعوت می شوند تا در بینشان شان حکم کند بعد از آن گروهی از ایشان از حکمیت روی برمی گردانند در حالی که از حق ایراد کنندهاند این سبب است که گفتند هرگز ما را آتش و غیر از چند روز محدود لمس نمی کند ایشان را افتراهایشان در برابر دینشان فریب داده است پس حال ایشان چی خواهد بود که در روزی آنها را جمع کنیم که در آن شکی نیست و به هر کس چیزی که کسب کرده است تماما پرداخته شود و به ایشان ستم نمی شود بگو بار خدایا ای مالک پادشاهی و هر که خواهی پادشاهی می دهی و از هر که خواهی پادشاهی را باز می گیری هر کی را خواهی عزت می دهی و هر کی را خواهی ذلیل میگردانی خیر به ید توست حقا که تو بر هر چیز توانایی شب را به روز داخل می کنی و روز را به شب داخل می کنی زنده را از مرده بیرون می کنی و مرده را از زنده بیرون می کنی و هر را خواهی روزی بیشمار می دهی بی. مؤمنان نباید جز مؤمنان کافران را دوست و سرپرست گیرند و هر کس که چنین کند پس از دوستی خدا برای او چیزی نیست یعنی رابطه خود را از خدا گسسته است مگر آنکه از ایشان به ناوی بترسید و خداوند شما را از خشم خود بر هزار می سازد. و بازگشت و سوی خداست بگو اگر چیزی را که در دل شماست پنهان کنید یا آن را آشکار سازید خدا آن را می داند و آنچه را در آسمانها و آنچه در زمین است می داند و خداوند بر هر چیزی تواناست روزی که هر شخص هر کار نیک را که انجام داده حاضر شده می یابد و نیز هر عمل ناشایسته را آرزو می کند ای کاش بین او و اعمال ناپسند او فاصله طولانی می بود خداوند شما را از خشم خود برحضر می سازد خداوند و بندگان خود بسیار مهربان است بگو اگر شما خداوند را دوست دارید پس مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد خداوند آمرزنده و مهربان است بگو خدا و رسول او را فرمان برید پس اگر ایشان روی گردانیدن در آن صورت خداوند کافران را دوست ندارد حقا که خداوند آدم نوح خانواده ابراهیم و خانواده عمران را بر همه جهانیان برگزید. دودمانی که بعضشان از نسل بعضی دیگرشان بودند و خداوند شنوا و داناست خاطر آورید وقتی را که زن امران گفت ای پروردگار من آنچه را در شکن من است؟ آزاد از همه مسایل دنیوی بطن از کردم لذا از من پیپزی تو بیگمان شنوا و دادا هستی هنگامی که او را زاد گفت پروردگار من من دختری زادم و بهتر بکتر میدانست که او چی زاده است و به هیچ وجه آن پسر مانند این دختر نیست من او را مریم نام و من او و اولادش را از شیطان مردود در پناه تو قرار می دهم پس پروردگارش آن را به قبول نیکو پذیره است خداون او را پروردش نیکو داد و ذکریه را سرپرستش سا هر باری که ذکریه و مهراب یعنی حجره عبادت مریم برای بیدنش را می شد نزدش روزی می یافت گفت ای مریم این برای توست کجا می آید مریم گفت این از جانب خداست حقا که خداوند به هر کسی که بخواهد روزی بی شمار در آن هنگام زیکریا به پروردگار خود دعا کرد و گفت ای پروردگار من تو از نزد خیش به من فرزندی پاکیزه ببخشت حقا که تو شنوندهی دعایی پس در حالی که وی در مهراب به نماز ایستاده بود فرشتگان وی را چنین صدا کردند بیگمان خداوند تو را به یخیا مجدمی دهد که تصریح کننده ای کلیمه ای از جانب خداوند است و بزرگ منشستو است پاک دامن و پیامبریست بریست از زمره صالحان زیکریا گفت ای پروردگار من چگونه من صاحب فرزند خواهم شد در حالی که پیری سر وقت من دسیده و زنم نازای است خداوند فرمود به همین گونه خداوند هر آنچه را بخواهد می کند گفت ای پروردگار من برایم نشانۀ مقررگردان خداوند فرمود ای تو آن است که سه روز با مردم حرف زدن نخواهی توانست مگر با اشاره و پروردگارت را بسیار یاد کن و در شام و صبح به پاکی یاد کن به آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و تو را پاکیزه ساخته و تو را برزنان جهالیان برگزیده است. ای مریم، پرولدگارت را به اخلاص پرستش کن، سجده ما و با رکوع کنندگان رکوع کن. این از خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنیم. و در آن وقتی که ایشان قلمهای خود را برای قرآن میانداختن، تا معلوم شود که خداون یکی ایشان متکفل تربیت مریم میشوند، تو نزد ایشان نبودی و هم در وقتی که آنها در زمینه باید دیگر منازمه کردن تو نزد ایشان نبودی بیاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم، حقا که خداوند تو را به کلمه از جانب خود بشارت میدهد نام او مسیح است عیسی پسر مریم که هم در این دنیا و هم در آخرت آبرومند بوده و از مقربان است و با مردم هم در گهواره و هم در بزرگسالی سخن می بوید و از صالحان است مریم گفت ای پروردگار من از کجا من صاحب فرزندی شوم در حالی که بشری به من تماس نکرده است گفت خداوند آنچه را اراده نماید چنین می آفریند و چون امری را دستور دهد پس بیگمان به آن می گوید شو و آن می شوید. و خداوند به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد و او را به حیث پیانبر و بنی اسرائیل با این پیام می که من بیگمان به شما با ای از پرودگار شما آمده ام که از گل با شما شکل فرندهی می سازم سپس در آن می دمم و به ازن خداوند پرنده می گردد و من به ازن خدا آنانی را که کور مادرزاد یا پیسند شکاه و مرده را جان می دهم و من از چیزی که آن را می خورید و از آنچه در خانه های خود ذخیره می کنید به شما خبر می دهم براستی اگر شما باور دارید، این معجزه ها برای شما نشانه است، برای اینکه من واقعا پیامبر می باشم و من به سوی شما آمده ام تا تصدیف کننده تورات باشم که پیش از من بود و برای شما قسمتی از آنچه را که قبلا به شما حرام شده بود حلال گردانم. و به شما موجزه را از پروردگار شما آورده لذا از خدا بترسی و مرا اطاعت کنی بگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را پرستش کنی این است راه راست چون ایسازشان یعنی یهودیان احساسی کفت کرد گفت مددگاران من در راه خدا چه کسانی خواهد بود؟ حواریون گفتند ما مددداران راه خداوند هستیم به خداوند ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما مسلمانیم پروردگار ما و آنچه تو فرستاده ایمان داریم و رسول را پیروی می کنیم پس ما را از زمره گواهان بنویست و یهودیان برای از بین بردن ایسا دسیسه چیمدند و خداوند این دسیسه را دامنگیر خودشان ساخت و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. و به خاطر آور وقتی را که خداوند گفت، عیسی من تو را برگیرندم و به سوی خود بالا برنده و تو را از اتهامات کافران پاک سازنده و کسانی را که تو را می کنند تا روز دست آفیز بر کافران برتری دهندم. سپس بازگشت شما به سوی من است و در بین شما در موضوعاتی که در آن اختلاف می ورزیدید داوری می کنم اما کافران من ایشان را به عذاب سخت در این دنیا و در آخرت عذاب می کنم و برای ایشان هیچ مددگاری نیست و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پس خداوند مزد ایشان را کامل می دهد و خداوند ستمگاران را دوست ندارد این چیز است که ما بر تو از آیات و یادآوری آوری حکمت می خانیم بگمان مثال عیسی نزد خداوند مانند مثال آدم است او را از خاک آفرید سپس به او گفت شو پس شد حق همان است که از جانب پروردگار توست پس از شک کنندگان ما باش. پس هر کی در این مسئله بعد از آنکه به علم حاصل شد با تو منازع کند پس بگو بیایید برای مباهله فرزندان خود و فرزندان شما را و زنان خود و زنان شما را خود و شما را می خانید سپس با تزرع و خلوص نیت دعا کنید و بر آنانی که دروغ می گویند لعنت خدا را می بدون شک اینها قصههای راستی نیست و هیچ و غیر از خدا و نیست و بیگمان خداوند هم اوست صاحب قدرت منی و صاحب حکمت فما اگر از مباهله روی برتابند از خداوند و حال مفسدان آگاست بگو ای اهل کتاب بیایید و سخنی که بین ما و شما مشترک است، همزبان شویم که غیر از خدا کسی دیگر را نپرستیم هیچ چیزی را به او شریک نیاوریم بعضی از ما بعضی دیگر را جز خدا به خدایی نگیرد پس اگر اهل کتاب روی برطابند پس شما بگوید گواه باشید که ما مسلمانیم یعنی به اراده خداوند تسلیم می باشید ای اهل کتاب، چرا در مورد ابراهیم منازع می کنید؟ در حالی که تورات و انجیل نازل نگردید مگر بعد از او؟ آیا شما نمی فهمید؟ آگاه باشید، شما کسانی هستید که در موضوعاتی که در آن کمی معلومات دارید منازع کردید اما چرا در مسائل منازع می که در آن معلوماتی ندارید؟ خداوند می داند و شما نمی دانید ابراهیم نه یهودی بود و نه هم نصرانی. بلکه او یک تا پرست واکی و مسلمانی بود و از زمره مشکال نبود بدون شک کسانی و ابراهیم نزدیک ترند که از وی پیروی کردند و این پیانبر و مسلمانان نیست و خداوند کارساز مؤمنان است فرقه از اهل کتاب می که اگر بتوانند شما را گمراه سازند اما ایشان شما را نه بلکه خودشان را گمراه می سازند و ایشان درک نمی کنند ای اهل کتاب چرا از آیات خداوند انکار می وزید در حالی که خود شما با آن گواه هستید ای اهل کتاب چرا حق را به باطل می و حق را پنهان می در حالی که میدانی؟ گروهی از اهل کتاب گفتند در اول روز به آنچه به مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز از آن انکار ورزید تا شاید مسلمانان به شک افتند و باز کردن. هیچ کسی را تصدیق نکنید مگر آنکه دین شما را پیروی کند بگو هدایت راستین همان و هدایت خداوند است شما را حسد بر این داشته است که این چنین دستیسه بکار برید که می بینید به کسی همان چیزی داده شده که با شما داده شده است یا از این می ترسید که مبادا در نزد پروردگار شما در برابر شما حجت آورند بیگو واقعا آقیان فضل خداوند است و هر کسی که بخواهد آن را میدهد و خداوند گشایش گریبان است و هر کسی را که بخواهد بر رحمت خیش اختصاص میدهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. و میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر نزدشان ثروت بسیاری را به امانت بگذاری آن را به تو با میل و آسانی ادا می کنند و میان ایشان کسانی نیز هستند که اگر نزد ایشان یک بینار را هم به امانت بگذاری آن را به تو باز نمی دهند. مگر اینکه که پیوسته بر آن مراقب باشید اینا سببی است که ایشان می گویند در پایمال کردن حق این امیها هیچ مسکولیت متوجه ما نیست و ایشان بر خداوند دروغ می‌بندند، در حالی که ایشان حقیقت را میداند باری هر کسی را که به پیمان خیش وفا کند و پرهیزگار باشد پس بیگمان خداوند پرهیزگاران را دوست می‌دارد. بگم اونکسانی کسانی که عهد خدا و سوگندهای خیش پولی چیزی را به دست می آورند ایشان به در آخرت ندارند و نی خداوند با ایشان سخن می گوید و نی آن در روز قیامت و مهربانی نظر می کند و ایشان را از گناه پاک می سازد و برای ایشان عذابی در است. بیگمان در میان ایشان گروهی هستند که زبان خیش را به خواندن مطالب خودساخته ای از کتاب می پیچانند تا شما آن را از کتاب بپندارید در حالی که آن قسمتی از گفته هایشان از کتاب نیست و می گویند این نزد خداوند است در حالی که این نزد خداوند نیست و خداوند دروغ می بندند در حالی که ایشان حقیقت را می دانن. برای بشری که خداوند کتاب، حکمت و پیامبری داده به او هیچ سزاوار نیست که به مردم بگوید شما بندگان من باشید و نه بندگان خدا بلکه میگوید شما مردم خدایی باشید چون کتاب را تعلیم داده اید و چون آن را خانده و شما را امر نمی کند که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید آیا او شما را به امر می کند بعد از اینکه مسلمان شدید و ب دارید وقتی را که خداوند پیمان استوار از پیامبران گرفت که چون به شما از کتاب و حکمت دادم بعد از آن به شما پیامبری آمد که تصدیق کننده همان چیزی بود که با شما است باید به با او ایمان آرید و باید که او را مدد داری سپس خداون گفت آیا اقرار کردی و به این پیمان مرا گرفتید؟ گفتند اقرار کردیم. خداوند گفت پس گواه باشید و من با شما زنگه گواهان هستم پس کسی که بعد از این برگردد این مردم همین هاوین فاسقه با یا به جز دین خدا و دین دیگر را می طلبند در حالی که همه کسانی که در آسمان ها و زمین اند به خوشی و ناخوش خود را به او تسلیم کرده اند یعنی اسلام را پذیرفته اند و به سوی او بازگردانیده می شوند بگو ما به خداوند و به آنچه به ما نازل شده و به آنچه به ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب و قبایل یعنی بازماندگان یعقوب وحی شده و به آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیانبران از طرف پروردگار شان داده شده از ایمان داریم در میانشان شان فرقی نمی و ما به او تسلیم هستیم و کسی که جز اسلام دینی را بجوید پس هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است چگونه خداوند قومی را هدایت می کند که بعد از ایمان آوردن خود کافر شد و بعد از اینکه گواهی دادند بر اینکه بر حق است و بعد از اینکه به ایشان نشانه های روشنی آمد و خداوند قوم گاران را هدایت نمی کند ایشان جزایشان این است که طرف خدا و فرشتگان و همه مردم بر ایشان لعنت می شود ایشان در این حالت همیشه و سر می برند عذابشان تخفیف داده می شود و نه هم به ایشان مهلت داده می شود مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و خود را اصلاح نمودند پس حقا که خداوند آمر و مهربان است بگمان آنهایی که بعد از پذیرش ایمان کافر شدند و بعد از آن بر کفر از هرگز هر گست و ایشان نمی شود و ایشان واکن گمراه بیگمان کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند پس هرگز از هیچ یکی از ایشان اگر چیز این را از طلاح هم پرکنند این فدیه ایشان برای نجات از عذاب پذیرفته نمی شود اینها برای شان عذابی در و برای شان نیست هرگز به کمال خیر نمی رسید تا از آنچه دوست دارید در راه خدا خرج کنید و آنچه را که شما میدهید حقا که خداوند با آن آغاست تمام خوردنی ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل یعنی یعقوب خودش پیش از این که تورات نازل شود بر خود حرام کرد بگو پس تورات را بیاورید و آن را بخوانید اگر شما صادق هستید پس هر که بعد از این دروغی را به خداوند نسبت دهد پس آن گروه واقعا ستمگاه هد. بگو خداوند راست میگوید. گوید، پس کش ابراهیم یک فرست را پیروی کنید و او از مشرکان نبود. حقا نخستین خانه که برای مردم قرر شد، همان است که در مکه مبارک است و مایه هدایت است برای جهانیان. در آن نشانه های روشنیست و از جمله مقام ابراهیم هر کسی در آن درایت در امان می باشد برای خدا بر مردم حج خانه کعبه فرض است برای کسی که توانی رفتن به سوی آن را دارد و کسی که کافر شود پس بیگمان گمان خدا وند از همه جهانیان بی است بگو ای اهل کتاب چرا از آیات خداوند انکار کار در حالی که خداوند شاهد اعمال شماست بگو ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از راه خدا باز می یعنی آن را نادرست جلوه می در حالی که شما شاهد حقانیت آن هستید و خداوند از آن چی می کنید هرگز غافل نیست ای مؤمنان، اگر گروهی را از اهل کتاب فرمان برید، شما را بعد از ایمان شما به با کفر باز می گردانند و چطور کافر می شوید در حالی که به شما آیات خداوند خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر که به دین خدا چنگ زند و سوها که انبراه راست هدایت شده است؟ ای مؤمنان از خدا به حق ترس او بترسید و نمیرید مگر در حالتی که مسلمان باشید و همه یک جا به رسن خدا چند زنید و پراگنده مشوید و نعمتی را که خدا به شما ارزانی کرده به یاد دارید هنگامی که شما دشمنان یک دیگر بودید و او میان دلهای شما الفت افگند پس به برکت نعمت او برادر یک دیگر شدید و شما بر کناره گدالی از آتش قرار داشتید پس شما را از آن نجات داد به این ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما راه یابید باید که در بین شما جماعتی باشند که مردم را به خیر فرا خوانند و امری به معروف کنند و از کارهای ناپسند باز دارند و هم ایشانند رستگار و مانند کسانی نباشید که بعد از آنکه که به ایشان نشانهای روشنی آمد پراگنده شدند و بین خود به اختلاف پرداختند برای ایشان عذابیست بزرگ روزی که روحای سفید شود و روحای سیاه گردد پس کسانی که روحایشان سیاه گردید و ایشان گفته می شود آیا بعد از ایمان خیش کافر شدید پس به سبب آنکه کافر شده بودید عذاب را بچشید اما کسانی که روحای سفید سفیب گردید، پس ایشان در رحمت خداوند بوده، در آن جاودانه و سر می اینها آیات خداوند است که آن را به حق بر تو می و خداوند به هیچ یک از جهانیان ستمی نمی خواهد. هر آنچه در آن در آسمانها و در زمین است، از آن خداست و همه کارها برای فیصله به خداوند بازگردانیده می شود. شما بهترین امتی هستید که برای خیر مردم بیرون آورده شده است با کار پسندیده امر و از کار ناپسند می نمایید و با خداوند ایمان دارید اگر اهل کتاب ایمان نیاوردند این کار به خیر ایشان بود بعضی از ایشان مسلمانند و بیشترشان فاسقند با شما جز از یک امدهک هرگز زیان رسانیده نمیتوانند. نمی توانند. اگر با شما جنگ کنند، با شما پشت میگردانند و سپس به ایشان هیچ کمکی نمی به هر جایی که یافته شوند خیمه خواری بر ایشان شده است. مگر آنکه که برشته حمایت خدا یا برشته حمایت مردم چند زنند، و به خشم خدا بازگشتند و بر ایشان خیمه بینوائی زده شده است این سببی است که ایشان از آیات خدا انکار میورزیدند و بناحت پیامبران را میکشتند این سبب آن است که ایسیان کردند و از حد میگذشتند همه ایشان یکسان نیستند از اهل کتاب گروهی اند که به طرفداری حق استادند ایشان آیات خدا را در آوان شب می و به خدای یکتا سجده می کنند به خداوند و روز جزاء. دارند مردم را بر آنچه خوب است امر میکنند و از آنچه بد است منمی رویان و در انجام اعمال سودان از همگان پیش دستی میکنند و ایشان از زمره صالحانند هر خیری که انجام دهند به آنان ناصیخوسی نمی شود و خداوند به حال پرهیزگاران آگاه بیگمان کافران، نی ایشان و نی هم اولادشان آنها را از هیچ چیز از عذاب خدا بینیا ساخته می تواند و ایشان اهل دوزخند در آن همیشه به سر می برد. مثال آنچه ایشان در زندگی این جهان خرج می کنند همانند است که در آن سرمای سخت است و ناگاه به کشتزار کسانی رسد که به خیشتن ستم روا واداشتند پس آن را نابود کرد و خداوند بر ایشان ستم نکرده است بلکه ایشان خود بر برخیشتن ستم کرده اند و ای مؤمنان از غیر خودتان دوست همراز نگیرید که در خرابکاری به شما کوتاهی نمی کنند رنج شما را دوست دارند واکن بغز از گفتار دهانشان آشکار است ولی آن شرات دل‌هایشان تنهان بزرگتر است تقا که ما برای شما آیات را بیان کردیم اگر خیراتمند هستید این شما هستید که ایشان را دوست دارید اما ایشان شما را دوست ندارند در حالی که شما به تمام کتاب ایمان دارید انگامی که شما را ملاقات کنند میگوین ما ایمان آوردیم اما وقتی که تنها میشوند از خشم بر شما سرانگشتان خود را میگزند بگو به خشم خود بی میرید که خداوند و آنچه در سینه ها است اگر خوبی به شما عاید شود آنها را اندوگین می سازد ولی اگر به شما بدی برسد به آن خوش می شود. و اگر شما ثابت قدم و پرهیزگار باشید دسیسه ایشان برای شما هیچ ضرری عاید کردن نمی تواند گمان خداوند به آنچه ایشان می کنند احاطه دارد بیادار وقت را که از خانواده خود صبح وقت بیرون شدی تا مسلمانان را در سنگرهایشان برای جنگ جا بجا کنی و خداوند شنوا و داناست بیادار وقت را که دو دسته از شما به سبب بزدلی خواستن سوستی کنند و از جهاد بازگردن در حالی که خداوند کارسازشان بود و مؤمنان باید همیشه بر خداوند توکل ورزند حتی که خداوند در بعد را شما را مدد کند. در حالی که شما در چشم دشمن خوار بودی، بنا بر از خدا بترسید تا باور که سفر کرده باشد. بیادار واترال که با مسلمانان می گفتی، آیا برای شما کفایت نمیکند کند که خداوند شما را به سه هزار فرشته که خاص برای همکاری شما فرو فرستاده شده مدد کند؟ آره اگر شما ثابت قدم بمارید و پرهیزگاری کنید حتی اگر دشمن با شتاب بر شما یوروش آورد باز هم پروردگار شما شما را با 5000 هزار فرشته ایداره نشانه های خاصی کمک می و خداوند این مدد فرشتگان را نگردانید مگر ای برای شما و تا دلهای شما آرام شابد و به هر صورت مددی نیست مگر از نزد خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت تا دسته از کفار را نابود کند یا ایشان را چنان و سازد که به نامرادی باز کردن. در این امر تو را هیچ اختیاری نیست، خواه خداوند توبهشان را بپذیرد یا آنها را عذاب کند، زیرا آنها واکن ستمگرند. هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست. هر که را بخواهد میامرزد و هر که را بخواهد عذاب میکند و خداوند آمرزنده و مهربان آمر است. ای مؤمنان، سود را چندین برابر مخورید، از خدا بترسید تا باشد که رستگاه و از آتشی بترسید که برای کافران آماده شده است خداوند و پیامبری او را فرمان برید تا باشد که مورد مرحمت قرار گیوید برای بدست آوردن یا و فروردگار خود و بهشت بشتابید که پهنای آن معادل تمام آسمانها و زمین است برای پرهیزگاران آماده شده است آن که در رفاه و عضرت با دست و دل فراخت می کنند و خشم خود را فرو می خورند و مردم را عفا می کنند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارند و آن که چون مرتکب عمل فحشا می شوند یا بر خود ستم می کنند پس خداوند را یاد می کنند و آمرزش گناهان خیش میخواهند و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و بر گناهی که کرده اند اصرار نمی ورزند در حالی که می داند این که پاداششان آمرزش است جانب پروردگارشان و باغهایی که در زیر آنها جویبارها و جیریان دارد در آنجا جاودانه به سر میبرند و چی خوب است مزد این نیکوکاران؟ حقا که پیش از شما نیز روش های زندگی وجود داشت پس در زمین سیاحت کنید تا دریا بید که سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود این بیان است برای مردم و رهنمود و نصیحت برای پرهیزگاران و سست نشوید و اندوهیم مگردید شما غالبید اگر واقعا مومن باشید اگر زخمی به شما رسیده یقین داشته باشید که زخم شده آن به آن مردم نیز رسیده است. چنین روزها یعنی نشیب و فرازها را به این مردم دست به دست تا خدا کسانی را که ایمان دارد معلوم کند و تا از شما شهیدانی بگیرد و خدا ستم گاران را دوست نمیدارد و تا مسلمانان را پاک سازد و کفار را نابود گرداند هایا گمان کردید که با بهش داخل می شوید؟ پیش از آن که خداون مجاهدان را از میان شما متمایز نساخته باشد و سابران را متمایز نکرده باشد؟ شما واقعا مرگ را تمانانی کردید پیش از آن که با آن روبرو شوید پس به گمان آن را دیدید در حالی که با آن با بیتفاوتی می نیگریستید. نیست محمد مگر پیامبری. بسا پانبرانی پیش از او گذشتهاند آیا اگر او بمیرد یا کشته شود به عقب اگر کسی به خود برگردد هیچ ضرری به خداوند رسانده نمی تواند و ب خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد هیچ کس را توان آن نیست که بمیرد مگر به اجازه خداوند سرنوشتی است تعین شده اگر کسی خواهان پاداش دنیا باشد ما به با او از آن میدهیم و اگر کسی پاداش آخیت را بخواهد ما به او از آن می دهیم و ما به زودی سپاسگزاران را پاداش میدهیم چی بسا فئون که به همراه ایشان مردان خراجوی بسیاری جنگیدند پس بس به سبب مصیبت هایی که در راه خدا به ایشان رسید سستی نکردند و ضعیف نشدند و تسلیم ننگریدان و خدا و آن صابران را دوست می‌داشت گفتار ایشان جز این نبود که گفتند پروردگار ما، گناهان ما و زیاد روی را در کار ما بیامرز و قدم ما را استوار داد و ما را بر گروه کافران پیروز گردان پس خداوند به ایشان پاداشی در این دنیا و پاداش نیک در آخرت داد و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. ای مؤمنان اگر کافران را فرمان برید شما را به شما باز میگردانند و سرانجام زیان می شوید به آنها اعتماد نکنید بلکه خداوند هامی شماست و او بهترین مددگاران است به زودی در های کافران ترس می اندازیم از سباب اینکه به با خدا شرک آوردن چیزی که خدا به آن دلیل نفرستاده است جای شان آتش است و چی جای بدیست جای ستنگاران و براستی که خداوند وعده خود را بر شما راست گردانید در آن هنگامی که آنها یعنی دشمنان را با اذن او چابک می این پیروزی تا هنگامی دوام کرد که سست شدید و در اطاعت از امر بر منازه پرداختید و نافرمانی کردید بعد از اینکه به شما چیزی را نشان داد که به آن رغبت داشتید در میان شما کسانی بودند که مال و متای دنیا را می و نیز در میان شما کسانی بودند که پاداش آخرت را میخواستند. سپس خداوند شما را از ایشان منصرف ساخت تا شما را آزمایش کند به گمان او شما را عفو کرد و خداوند به مومنان صاحب بخشایش است بیا دارید وقتی را که سراسیمه با بلندی بالا می رفتید و به کسی بعقب نمی در حالی که پیامبر شما را به سوی کسانی فرا می که با که شما مانده بودند سپس خداوند شما را به اندوهی از پای اندوهی جزا داد تا به از دست دادن مال غنیمت و مسیبت که عاید حال شما شدد اندوبگیم نشوی خداوند بی گمان با اون چی می کنی آباست. بعد از این اندوب سپس خداوند آرامش را بر شما چی را پینکی یعنی خواب کوتاه که دسته از شما را فرا گرفت در حالی که گروه دیگر را اندیشه نجاتشان با خود مشغول ساخته بود آنها گمانهای نادرستی همچون گمانهای دوره جاهلیت می و میگفتند آیا از این امر یعنی پیروزی چیزی نصیب ما می شود بگو واقعا همه امور کاملا به اختیار خداست چیز را که به تو ظاهر نمی سازند و دل خود پنهان میکنند، با خود می اگر برای ما از پیروزی بهره می بود در اینجا کشته می شدیم؟ بگو حتی اگر شما در خانه های خود هم می بودید بگو من کسانی که مرگ بر ایشان مقدر شده بود و جاهای مرگ خود می شداختند این همه برای آن بود تا خداوند آنچه را در سینه های شما است آزمایش و آنچه را در دلهای شما است کند و خداوند و آنچه در سینه‌ها ها است آگاه می باشد. آن از شما که در روز روبرو شدن دو جمعیت روگردانیدند بیگمان شیطان بود که ایشان را به سبب بعضی از اعمال ناشایسته که انجام داده بودند لغزانی بیگمان خداوند از ایشان درگذشت فقط که خداوند آمرزنده و صاحب حلم است ای مؤمنان شما مانند کافرانی نباشید که در حق برادران خود در هنگامی که به سیاحت بیرون می رفتند یا به جنگ مشغول می شدن می گفتند اگر ایشان با ما می پاییدن نمی و کشته می شدن تا خداوند این گفته ها را سبب حسرت و پشیمانی در دلهایشان گرداند و خداوند است که زنده می گرداند و می میراند و خداوند به آنچه می کنید بیناست و اگر شما در راه خدا کشته شوید یا بیمیدید آمرزش و مرحمت خداوند به مراتب دهتر از چیزهاییست که ایشان جمع می کند و اگر بیمیدید یا کشته شوید همانا به سوی خدا حاشق می شدید سپس به سبب رحمت خداوند در شدی اگر تون خوی یا سخت می بودی از اطراف تو می شدند پس از خطاهای ایشان درگذرد و برایشان برای آموزش بخواهد و با آنها در کارها مشوره کنند و چون عزم کردی پس پس خدا توکل نمای و که خدا متوکلان را دا دوست دارد اگر خدا شما را پیروز سازد پس هیچ کس بر شما غالب شده نمی‌تواند و اگر او شما را مدد نکند پس بعد از آن کیست که شما را مدد کند و مسلمانان باید با خداوند توکل ورزند هیچ پیانبری نیست که چیزی را پنهان کند یعنی خیانت کند و کسی که چیزی را از مال غنیمت پنهان کند در روز بازپرس آنچه را در آن خیانت کرده می آورد سپس به هر کس هر آنچه را کسب کرده است داده می شود و به ایشان ستم نمی شود آیا کسی که خوشنگی خداوند را می جوید مانند شخصی است که برخشن خدا باز می گردد جای او دوزخ است و چی جای است دوزخ؟ هر یک از ایشان در نزد خدا در متفاوت دارند و خداوند به آنچه ایشان می کنند دیناست خداوند بیگمان گمان بر مسلمانان منط گذاشت هنگامی که به ایشان از میان خودشان پیانبر فرستاد که بر ایشان آیاهای خدا را می خواند ایشان را پاک میگرداند و به ایشان کتاب و حکمت می آموزد اگرچه پیش از این در گمراهی آشکاری بودند بایا چون با شما مصیبتی رسید در حال که دو چند آن مسیبت را به دشمنان رسانیدید باز هم گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو این طرف خود شماست حقا که خداوند بر هر چیز تواناست مصیبتی که در روز روبرو شدن دو جمعیت به شما رسید پس به اجازه خداوند بود تا مؤمنان را مشخص گرداند و هم منافقان را مشخص گرداند و چون به منافقان گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یالا عقل دشمن را از شهر خود دفع کنید گفتند اگر جنگ را می دانستیم یقینا از شما پیروی می کردیم در آن روز ایشان نسبت به ایمان و کفر نزدیکتر بودند به دهنهای خود چیزهایی می گفتن که در دلهایشان نبود و خداوند و آنچه می پوشانند داناست یعنی یعن منافقان خود از جهاد نشستند. و آنگاه و برادران خود گفتند اگر از ما پیروی می کردند کشته شدند بگو اگر راستگو هستید پس مرگ راز خود دفع کنید کسانی را که در راه خدا کشته شده آن مردم ما پندار بلکه زنده ان و نظر پروردگار خیش گوزی دادن ایشان و آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده است شادمانند و دفتاد آن هستند که به با بازماندگان خیش که تا هنوز با ایشان پیوست نشده اند بدهند که با ایشان ترسی نیز و نی هم ایشان اندوهین می شوند به از جانب پروردگار و فضل وی مجده می دهند و اینکه که خداوند هرگز مزد مؤمنان را ضائع نمی سازند که حکم خدا و پیانبر او را بعد از اینکه به با ایشان زخم رسید نیز اجابت کردند برای نیکوکاران و پرهیزگارانشان مزد بزرگ است آنهای که چون مردم و ایشان گفتند مردم برای مقابله شما تجمع و از ایشان ده تصیح. این سخن ایمانشان را قوی گردانید و گفتند خدا ما کافیست و بهترین کارساست ایشان به نعمت و فضل خداوند به چنان حالتی بازگشتند که گویی هیچ زیانی به آنها نرسیده و خوشی خداوند را پیروی کردند و خداوند صاحب فضل بزرگ است بی این شیطان است که هواخواهان خود را میترساند از ایشان ما ترسید بلکه از من به اگر ایمان دارید آنانی که به کفر میشتابند نباید ترا اندوهین سازند بدون شک ایشان هیچ زرری به خدا نمیرسند. خداوند میخواهد که به ایشان از آخرت بهره قرار ندهد و برایشان برای اعظابи بزرگیاست آنانی که کفر را به ایمان خریدن هیچ ضرری به خدا نمی رسانند برای شان اعذابی دردناک است کافران نباید فکر کنند محلتی که ما به ایشان می دهیم خیرشان است ما به ایشان برای آن محلت میدهیم تا بر گناه خیش بیفضایند و برای ایشان عذاب احانتبار است خداوند مؤمنان را در حالت نمی گذارد که در آن اوکن شما قرار دارید تا پاک را از پاک جدا ند چنان نیست که خداوند شما را بر اسرار غیبی آگاه گرداند مگر خداوند به این منظور از پیامبران خیش هرکی را خواهد برگزیند، پس به خدا و پیانبران او ایمان آرید و اگر ایمان آرید و پرهیزگاری نمایید برای شما مزدی بزرگ است آنهایی که بر آنچه خداوند از فضل خیش و ایشان ازوانی کرده بخل میورزن نباید این کار را به خیر خیش پندارند، بلکه این به زیانشان است و زودی در روز قیامت چیزی که به آن بخل ورزیدن توقع گردنشان میگردن میراش آسمانها و زمین از آن خداست و خدا به آنچه میکنی آگاه است حقاو که خداوند گفته آنانی را که گفتند، واکن خداوند نادار است و ما ثروتمند هستیم شنید ما بزودی سخنانشان را و نیز عملشان را مبنی بر بناحق کشتن پیامبران را می نویسیم و برایشان می گوییم پچشید سوزان را این به سبب آن اعمال نادرستی است که دست‌های شما از پیش فرستاده است و خداوند هرگز بر بندگان خود ستمگار نیست آنهایی که گفتند حقا که خداوند از ما عهد گرفته است که به هیچ پیانبر ایمان نیاوریم مگر آن که قربانی را بیاورد که آن را آتش از آسمان بخورد بگو پیش از من نیز پیانبرانی با موجزه ها و با چیزی که شما خواستید آمدند پس اگر بگو گفته خود صادق هستید چرا ایشان را خوشید؟ پس اگر تو را تکذیب کردن پیانبران پیش از تو که با موجزه ها،, موجزه ها و کتاب روشنی بخش آمدن نیست تکذیب کردن هر کسی مرگ را میچشد و شما بیشک مزد کامل خیش را در روز قیامت آمد دریافت بیکنید بس کسی که از آتش دوزخ دور نگاه داشته شود و به بهشت داخل ساخته شود چنین شخصی در واقع به مراد خویش رسیده است و زندگانی این دنیا چیزی جز مطای فریبندهای نیست بیگمان شما در مالهای خود و در جانهای خود مورد آزمون قرار بگیرید و بیگمان شما از اهل کتبی پیش از خود و مشرکان بدگویی بسیار میشنوید و کیبایی که وزی و پرهیزگاری نمایی، بگمان این کار از امور شایسته و استوار است و بخاطره و ار وقت را که خداوند از اهل کتاب عهد گرفت که آن را برای مردم برای شنید بیان کنی و احکام آن را پنهان ننمایی، پس آن را با پشت سر خود انداختن و در بدل آن بهای ناچیز خیلیدن و چی بد از چیزی که ایشان میخواد. کسانی که به آنچه کردند می و دوست دارند که به کارهایی که نکرده ستایش شوند پس ایشان را مپندار که از عذاب بر برای ایشان عذابیست است. ناک پادشاهی از مرها و زمین از آن خداست و خداوند بر همه چیز تواناست واکن در آفرینش از و زمین و اختلاف شب و روز برای خیرت مدان نشانه آنهایی که استاده نشسته و برپرلوهای خیش دراز کشیده خداوند را یاد میکنند و در اطرار آفرینش آسمان و زمین فکر میکنند و با خود میگویند بروردگاه ما اینها را عبس نیا پاکی تو پس ما را از آتش دوزخ نگهده پروردگارا بی گمان هر کی را که به دوزخ درآری حقا که او را رسوا ساختی و برای ستمگران هیچ مددکاری نیست پروردگارا ما از دعوتگری گریش نمی‌گیم که سوی ایمان فرا خواند و می گفت که به پروردگار خود ایمان آرید پس ایمان آوردین پروردگارا پس برای ما بناهان ما را ببخش از ما به های ما را بزداید و ما را با کوکاران بی ایران پروردگارا چیزی را که به پایان بران خود به ما وعده کردی انعایت فرمان و ما را در روز قیامت رسوا مگردان حقا که تو خلاف وعده نمی پس خداوند دعای ایشان را اجابت کرد که من هرگز عملی هیچ عمل ای شما را از مرد یا زن زایی نمی کنم بعض شما از جنس است. شما از یک پس آنانی که هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند. و در راه من ازیت دیدند جنگ کردند و کشته شدند. حقا که من از ایشان گناهانشان را میزودایم و ایشان را در بهشتهایی جا میده هم که در زیر درختهای آن جویبارها جریان دارد و این مزده است از نزد خداوند و نزد خداوند بهترین مزدهاست خیرامیدن چند روزه کفار در شهرها نباید ترافریده هست این بهرمندی است سپس جای بازگشتشان دوزخ می باشد و چی بد جاییست دوزخ ولی برعکس برای کسانی که از پرودگارشان بیترسند بهشتهایی است که در زیر درختهای آنها جویبارها جریان دارد در آنجا ایشان جاودانه و سر میبرند و این مهمانی است از جانب خداوند و آنچه در نظر خداوند است برای نیکان بهتر است و یقینا در بین اهل کتاب کسانی اند که به خداوند و, و به آنچه بر شما نازل شده است و آنچه بر ایشان نازل شده، به طور قطع ایمان میارن در حالی که به خدا فروتنی می کنن ایشان آیاهای خدا را در بهای اندک فروشند برای ایشان نزد پروردگارشان ارزش است. هر که خداوند در حساب گرفتن سعیست، ای مؤمنان شکی بای ورزی ثابت قدم باشی از مرزهای خود مراقبت کنی و از خدا بترسی تا باشد که رستگاه شوید